شناود را آهو مزدا. آشم و هو و استی. او شد و استی. او شد احمایی هیاد و هشت داوی آشم. هو و ایریو اتارتوش اشا چید هچا. ونگه اوش تصدا مننگها شیأت ننام انگه اوش مزدای شترمچا چا آ آیم درگوبیو ددت فاستارم بخشنودی اهورا مزدا خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فروهر اشوزرتش سپنتمان و همه نیکان و وحان هفت کشور زمین و با درودی دوباره و گرم بر همه شما گرامیان همیهنان هماندیشان دانشجویان و دانشپژوهانی که از چارسوی دیتی در این جایگاه گرد آمدید و یا کسانی که پستر به باز بازپخش این برنامه از راه رادیو و اینترنت می دید. بسیار خوش آمدید روز پنشنده روز دیب مهر و آزر ماه 3750 و و زرتشتی برابر با 29 نوامر 2012 ترسایی است دوستان هفته پیش رو با شما نبودم و برنامه این هفته رو هم ناچار شدم که از پیش ضبط کنم و از این رو نمیتونم به پرسش های شما در پایان برنامه پاسخ بدم اما بیگمان اگر پرسشهایی داشته باشید برای هفته دیگر پیمان میدم که پاسخ اونها رو دریافت خواهید کرد پیش از آغاز سخن امروز سپاسگذاری میکنم از کتبان کروش آریانا که هفته پیش در نبود اینجان زحمت اجرای برنامه را پذیرفتند و در مورد آیین سدر و چرایی و چگونگی آن و همچنین در مورد راستی و عشا و چیزهای دیگر سخن گفتند که از اونجا که این بن ماهی دین ماست من هم به گفتگو از اون ادامه خواهم. دارد. اما پیش از پرداختن به موضوع عشا میخواستم چیز دیگه رو با شما در میون بذارم و اون این هستش که گفتگووه هایی در دنیای مجازی که البته به بیرون از اون هم کشیده میشود در جریان است که، از اونجا که میتونه انگیزه و شبهی شاید برخوردهایی بشه و بویژه برای کسانی که تازه وارد هستند در این دین و جهان جهانبینی پرسشهایی رو وجود بیاره که چه درست هست و چه درست نیست خواستم که توضیح بدم و کمی بیشتر روشنایی بیاندازم البته این رو باید بدونیم که برخورد اندیشه ها و دیدگاه ها اگر در اندازه باشند و هدف اونها رسیدن به راستی ها باشه نه تنها بد نیست بلکه بسیار هم سازنده میتونه باشه به شرط اون که چند تا چیز رو حتما بهش توجه داشته باشه یکی اون که زبان و شیوه گفتار باید همواره سنجیده و بخردانه و به دور از بدگویی ها و انگ ها و و سخنان درشت باشه اترکنیم سپس اون که تنها دهانمون باز نباشه و زبانمون دراز بلکه گوش شنوا هم داشته باشی شنیدن بسیار مهم است همچنان که خوب گفتم اما این دو هم باید در اندازه های درست خودشون باشد. سپس اون که یادمون نره که هدف رسیدن به عشای راستی هاست که میشه گفت دارنده نداره مالک نداره صاحب نداره بلکه برای همه است اینکه چه کسی راستی ها رو میتونه بیان کنه کمتر مهمه تا خود راستی و سرانجام که همه چیز رو همگان میدونند و آنچه که یکتر میداند تنها درک و برداشت اوست تا اون زمان و اون دم و اون هنگام و اینها یک قوانینی همگانی هستند، برای هم هستند حالا اون موضوعی که میخواستم در یون بگذارم این است که برخی از دوستان همچنان پرسش گاتاها در برابر دیگر های عوستا و همچنین دفترها و متون پهلوی رو پیش میکشن که البته تازگی ندارد و چندین بار هم در موردشون گفته شده و باز هم میگوییم که در کنار این که همه اون یادگارهایی که از اندیشه و گفتار و کردار نیاکانمون برامون مونده و تنها بخشی از همه اون اندیشه ها و سر اندیشه ها از راه این ها و دفترها و دستمون رسیده همه اینها برامون گرامی هستند و باید باشند و همه ما هم چه آگاهانه و چه ناآگاهانه بسیاری از این سرندیشا ها و باورها رو در خودمون داریم. از سوی دیگر چیزی داریم به نام که جزو جدا نشدنی از فرهنگمون هست و چه در گاتا و چه دیگر بخش ها همواره از اون گفته شده. و اون هست که راهنما، و روشنی اندازنده به راه و راستی ها باید باشه در مورد خرد و دو گونه آن یعنی آسنخرد و گوش و سرود خرد یا خرد گوخری و سرشتی از یک سو و همچنین خرد به گوش یا دریافتنی گفتیم که در هماهنگی و آمیختگی با هم هستند که میتونند یک نگگاه یک تصویر بزرگتر و همهگیرترری از راستی ها رو نشون ده. از اساس واژه خرد که در شکل کهاهترش، خرط خردو یا خروم هست در خودش این مانیو مفهوم همهگیر بودن رو داره. خرط یا هر یا همه، که همون همه بودن هست همه گیر بودن هست خرات تو اگر تو بگیم این توویدن تابیدن تابش میشه گفت از این دیدگاه میشه گفت تابش همه چیز تابش همه گان اگر بگیم خراتوم این توم همان تومه تخمه، یا گوهر و سرشت و اس و اساس و ریشه است پس خراتوم میشود، تخمه و گوهر و سرشت و اساس همه چیز در واژه هعروتات یا خردات هم این همگی و همه بودن هست که به واجه های دیگر بش میگیم رسایی یا تکامل کامل بودن یعنی گیر بودن همه بودن از اینها که گفتم در این زمان این براورد رو میخوام بهش برسم که راستی رو در همه جا و همه چیز میشه در پیش بود حال چه گاته ها باشه چه بندهش باشه چه مینوی خرد باشه یا چه شاهنامه باشه اما با این حال یک چیز رو باید دونست که زبان فرهنگ نیاکان و آن چه که در این دفترها برامون بازمونده برای امروز ما در خیلی جاها زبانش هانچنان که ما میخواییم روشن و آشکار نیست و خیلی جاها کد دارد، راز دارد، خیلی آمیختگی درش است که در بسیاری جاها در حس یک واجه و یا فراز مفهوم بسیاری نهفته است و اونجاست که هر کسی با خواندن و شنیدن این نوشتارهای کهن از آنجا که کلید همه اونها در دست نیست هر کس از دیدگاه امروز خودش دست به بازگشایی و فهم اونها میزنه که از همین رو میتونه بسیار گوناگون باشه یکی از دلایلی که برخی پافشاری دارم که گاته ها رو نخست و اصل بدانیم اون است که دست کم برای آغاز و دانستن بنمایه ها و پایها از جای آغاز کنیم که جمع و جورتر باشه و یک دستتر. هرچند که می دونیم در برگردان و ترگمه یا ترجمه همین گاته ها هم در ظاهر گوناگونی وجود داره و هم دلیل اولیهش چگونگی درک و برداشت و حتی خواست آرمان هر نویسنده و مترجمی هم میتونه باشه که اگه از این دید نگاه کنیم سخن این دوستان درسته که میگن هر کسی از دید خودش برداشت میکنه و آنچه میگه و می نویسه دیدگاه خودش تا اینجا میشه گفت که درسته هرچند که بر بسیاری از این برداشت ها و مفاهیم خیلی هماندیشه و همراستا و، همراهی هستند و میشند که همبینش هستند اما اصول دیگر زمانی که این دوستان میگن که هیچ کدوم این کسان حتی در برخی موارد موبد موبدان هم نمیفهمیدن که دین راستین زرتاشتی چیست خب مفهوم دیگرش این است که پس تنها اونها میفهمند و میدونند و از این رو میتونن در مورد دیگران چنین داوری بکنن چون کسی میتونه در مورد دیگران داوری کنه که یمان کنه خودش میداند اینان به ویژه به متون پهلوی اشاره میکنن که دین راستین زرتشتی رو باید در اونها یافت و نه گاته ها یا که نه تنها گاته ها خب که پرسش خود من در اینجا این است این که این دین راستین زرتشتی که دوستان در میان متون پهلوی به ویژه یافتند چیست بیایند و اونها رو بازگو کنند تا بشه سنجید و مقایسه کرد. ببینید دوستان روی سخن من با همگان هست چه این گروه فکری و چه آن گروه فکری و آن این است که چه گاتاهایی بیاندیشیم و چه اوستایی و پهلوی اگر همه باور داشته باشیم که راستی بهترین نیکی است و دروغ بازدارنده و زیانباره است پس ما همه همبین و همدین هستیم اگر همه باور داشته باشیم که جان و زندگی ارزشمند است و نباید اون رو آزرد پس ما همبین هستیم اگر همه باور داشته باشیم که مهر پیوندگار جان و جهان است و همه باید مهرورد و مهربان باشیم پس ما همبین هستیم اگر همه باور داشته باشیم که خیشکاری ما گستردن راستی و درستی و خرد و نیکی و مهر در جهان هست پس همه همبین و همدین و هم کیش هستیم حال اگر یکی خدا را در پخنه آسمان ها میبیند دیگری در خودش یکی اشوزرتوش را پیامبر میداند دیگری فیلسوف و دیگری بینشور یکی باید از دوزخ آنچنانی بترسد تا دروغ نباشد و دیگری دوزخ را برای نمونه حالتی روانی میداند یکی به جهان پس از مرگ باور دارد دیگری ندارد یکی روزی پنج بار نیایش می یکی سالی یک بار ولی هردو اینها و همه اینها از دیدن ستم و دروغ و رنج و چینه و آزار رنج میبرند و هر دو میخواهند که جامعه و جهانی آباد و آزاد داشته باشند و داد و برابری برای همگان باشد پس همه اینها همبین و همدین هستند نیک بینی و نیکدینی جهانی است و زندگی و زندگان رو در بر میگیره که البته باید گفت همه چیز چون هست زنده هست البته اجگذاری به جای آوری و زندنگهداری آینها و سنتها و مراسم و جشنهای زیبا و راست و درست و شادی بخش و تازه گردان آینی فرهنگی جای خود رو دارم. که از راه اونها دین بهی زنده مانده و زنده خواهد ماند و ما همه باید در این راه کوشا باشیم خب اینا که گفتم باز هم اساس و پایه بودند و هدف اینه که برای دیدن و دریافتن حشار یا راستی باید چشم دل و درون و ژرفابین رو باز کرد و در بند و اسیر رونماها و ظاهرها نمود یکی از این مفهوم ها و منمایهایی که باید هرچی بیشتر به اون پرداخته در موردش سخن گفت و باز گفت همین عشایا یا راستی است که پایه و مایه بهدین است از این رو میخوام کمی بیشتر در موردش بگم و از زوایای گوناگون بهش نگاه کنم خب میتونیم نخست از اینجا آغاز کنیم که در مورد خود این واژه که شاید در پیش هم گفته باشیم به حال بازگویی می کنیم این است که خب ریشه سانسکریت میدونیم که سانسکریت و عوستایی میگویند زبانهای خواهر یعنی این زبانها از یک جا آمدند و آنچه که مادر این زبان هاست یا پروتوتایپ این زبان هاست هنوز به درستی روشن نیست ولی به هر روی این دو زبان رو راحتی میشه با هم سنجید مقایسه کرد و از یکی به دیگری راه یافت در سانسکریت واژه رتا،, رتا رتا داریم و عوستایی ارتا شده که یک مانا و اون رفتن هست رفتنی راست و درست همین اره هست که به گویش عوستایی به ما رسیده و شده عشر که در پارسی باستان به گونه ارطه و در پارسی میانه و سپس پارسی و برخی دیگر از زبان ها هم شده ارد همون که در اردی بهش داریم اردشیر اردبان و دیگر واژه‌ها. ها ارته با رکتوس در لاتین و همچنین رایت در انگلیسی ما در سوودی هم رت داریم اینا هم نواهای زبانهای هندو اروپایی هستند هم ریشه هستند راست در پهلوی و پارسی هم از همین همینجا میاد و برای رسیدن به یه همچین ساختی یعنی راست باید از یک گونه زمان گذشته های سانسکریت انگاش که اراسته یا رته بودند به هر روی حالا زیاد به زبان زبانشناسیش نمیپردازم گفتیم به هر روی اما اینجا میخوام به یک واقع یک نگاهی از این راستی بیاندازن در به عنوان یک پدیده اخلاقی روانی منشی و اجتماعی یا که میشه نامش رو بذاریم رو راستی همون چیزی که به عربی صداقت میگویند صادق بودن رو راستی ببینیم چیست؟ نخست این که بدانیم راستی یک منش است، یعنی اون گفتار و رفتاری است که از درونمون و منشمون راسته بیرون میاد. بدون اینکه بخوایم اون رو بپوشونیم یا روی دیگری بهش بزنیم ماست بش بزنیم و زهار کنیم. البته این بدون معنا نیست که هرچه که از دلمون برمیاد در همه جا و در برابر بر همه کس بر زبون بیاریم که اون البته پرسش ادب داشتن است ولی دروغ هم نباید گفت فریب نباید داد دوستانی رو که از دست میدیم نخوست فریب که این از فریب دادن خودمون میاد چنین مین مایه که ما به سادگی میتونیم در مورد راست بودن خودمون دروغ بخشی از ما ناخداگاه بر راست بودنمون پافشاری داره بدون اینکه به درستی بدونیم که چه میکنیم و چه میگیم کودکی رو که کار نادرستی انجام میده اگر گیرش کنی و ازش بپرسی اولین چیزی که میگه میگه من نبودم من نکردم و چنین بهدیده میاد که دفاع کردن و پدافن کردن از کرده خیلی ساده تا اینکه که با روراستی راستی اون رو بازبینی کنیم و به جای اون همیشه ما انگشت اتهاممون به سوی دیگران هست و دیگران یورش میبریم راستی که باید برای راست بودن باید شیده تا بتونیم با ترس هامون رو برو بشیم ترس از چی؟ ترس چیست خودش یک گونه باوری است که از ناتوانیمون داریم برای که با چیزها روبرو بشیم و یا که نتونیم کنترلش کنیم. و چون این ترس یا بهتره بگم باور به ترس درونمون وجود داره، هزار جور دلیلو بهانه دیگه پیدا میکنیم تا اون رو بپوشونیم. خب آیا ما این دلیلیت رو داریم که با ترسامون رو, رو بشیم این سختترین آزمون زندگیه که اگه در اون پیروز نشیم خودمون رو بوم میکنیم ناخداگاه میشیم دوری میکنیم فراموشی میاریم به جای اینها چقدر میتونیم سبک و رها بشیم اگر با یک گفتار و یا کردار نادرست خودمون روبرو رو بشیم و بگیم هاری این من بودم که چنین کردم چون میترسیدم همین و این نخستین گام هست به کشف اون ترس پنهانه و دیگه نیازی نیست که تلاش کنیم تا دنیا رو دگرگون کنیم و دیگران رو دگرگون کنیم و میتونیم روی خودمون کار کنیم خب نام دیگر راست و درست نبودن چیست دروغ و فریب از خود فریبی گرفته آغاز میشه تا دیگر فریبی یک فریبکار یک وانمودگر هست یا تظاهر میکنه متظاهر نمایش بازی میکنه چه خداگاه باشه و چه ناخداگاه و این تظاهر به این وانمودگری همه حشیاری و توجه انسان رو به خودش میکشه و باعث میشه که نیروهای آفریننده و سازنده از بین برن و جای نیروهای خوب و الهام رو بگیرن و تنشی رو در درون انسان درست میکنه که اون تنش میخواد به بیرون بیاد و این به بیرون آمدن این نشان دادن بیرونی گاه به بیماری میانجامه و گاهی هم به خشونت آره اگر به چنین کسانی یادواری کنی که دارن نقش بازی میکنن فوری به پدافند از خودشون برمیان و از دیگران خورده میگیرن و اگر همین روند رو ادامه بدن دیگه خودشون هم اون پیوندشون با احساسات راستینشون را دست میدن و یه شخصیت های دروغی برای خودشون میسزن که این شخصی هم خودقاه هستند، هم بی انگارند و نمایشگرند. و این گونه کسان همش دارن از دیگران انتقاد پشت سر دیگران کپ میزنند و به کسانی یورش میارند که راست بودن اونها در واقعی یادآور دروغی بودن خودشونه. و این گونه رفتار که در آغاز، به گونه آگاهانه است آرام آرام ناگاه میشه و خودکار قبط باید گفت که بسیاری از این انسان هم در سرشت نیک هستند که از ترس به سوی دروغ کشته میشن و برای که کمتر به وجدانشون فشار بیاد برای فریب دیگران و دروغ گفتن به اونها که صفتهای ویژهی هایی رو به اونها نسبت میدن که که اونها رو سزاواره در واقع فریب کردن بکنه و هر روی این گونه کسان این گونه انسان ها خود به خود به کسای نزدیک میشن که مانند خودشون باشن و همون گونه رفتار میکنن و سپس میگن که خب ببینید همه دارن همه دارن اینجوری میکنن اما باید دانست که زندگی این دروغکاران یک یک است از پیوندهای گسسته شده از جدایی ها و شکستها و سرانجامش این میشه که اون ترسی رو که میخواستند پیدا کنند در واقع نیروی بیشتری میگیره از سوی دیگه اون ناراستی رو که من در جهان میبینم یک بازتابی از ناراستی درون خودم وانمود کردن به اینکه من راست هستم و دیگران نیستند هم به راستی کارگر نیست، موثر نیست. کسانی که خودشون رو در برابر ناراستی که در دنیا هست پاسوق نمی‌دونند، در این دام می‌افتند. دوستان ما تا زمانی که برای به راه راستی آوردن ناراستی های دنیا تلاش گروهی و هماهنگ نکنیم میشه گفت همگیمون گیمون ناراس هستیم. خب شده برسید که چگونه میشه این کارو کرد، خب بیگمان ترساندن از مجازات و پادفره و یا اینکه افشاگری و اینها پاسخ مناسبی نیست. پاسخ بهتر اینه که هر کدوم از ما چه در زندگی تکیه خود و چه در پیوند با دیگران یک نمونه خوب و دلیل از راست بودن بشیم. حتی اگر این کار انگیزه اون بشه که در برابر سرزنش و داوری های این گونه وانموندگران قرار بگیریم. در ما گوییم که راستی راهی است که به شادی و خوشنودی می انجامد و راستگشتن تازگردانی خیشتر است. خب ما در این زمانی که ما دلیری اون رو داشته باشیم که پاسخگو کرده های خودمون باشیم و اونها رو همون که هستند ببینیم و بشناسیم اون زمان میتونیم اون خود راستینمون رو بشناسیم. رو راست بودن با خود همانا وارد کردن راستی بیشتر به آگاهی همگانی دنیاست. میوه راست زندگی کردن، همدلی و همفهمی و هم است و در این یگانه شدن دلخواسته با دیگران یک شادی و خورسندی نفته است و بدینگونه گونه است که اون نیروهای آفریننده به کار میفتند نیرومند میشند همکاری ها گسترده میشند و یک توانمندیهای های خودشون رو نشون میدند و پیوند ها بهتر و زیباتر میشند که باز میوه اونها هم به دست اومدن یک آرامش آسودگی خیال و یک زندگی خوب است. چیزهایی که به راستی نمیتوان با پول و نام و زور یا با قدیمی ها زاری و زور و زر خرید خب دوستان به اینجا که رسیدیم خواهش میکنم سامانگر گرامی یک موسیقی ما را مهمان کنید تا بعد از اون دوباره ما این داستان راستی و دروغ و یک گونه دیگه ادامه بدیم تا شاید که بتونیم بیشتر و بیشتر بدانیم و بفهمیم که دروغ چیست و چگونه از اون دوری کنیم موسیقی خب با دروری دوباره و سپاس باز می به گفتار راستی و دروغ یا بهتر بگوییم که بخواهیم به عشاق بپردازیم ببین دوستان اگر بخواهیم به مفهوم و مانای گسترده عشاق به عنوان سامان و هنجار هستیو ریتم کیهانی و مانند اون نگاه کنیم و در یک سطح گستد و فراگیر و فرا انسانی خب در اونجا سخن از قوانین شناخته و ناشناخته فیزیکی و شیمیایی و زیستشناسی و سپه شناسی و مانند اونها هست که خب اونجا گستره دانش است و کفتگوی جداگانه رو میخواد اگر به عشاء در زمینه زندگی بر روی این کره خاکی و سامان و هنجار و هماهنگی میان همه پدیده های هستیدار بر روی اون نگاه کنیم که اون هم خب یک گستر و گفتمان خود رو میخواد البته در همه این می میتوان یک بازنمود گسترده یا تعریف کلی ارائه داد و این است که هر کس و هر چیز باید در جای و اندازه درست و شایسته و عشایی خودش باشد تا هماهنگی و همزیستی و همبودی شکل بهینه و نیک به خود بگیرد و قوانین دستان در کار, در کار سپهر و طبیعت نیز در راستای فضایندگی و گسترش سپهر هست و آنچه ما در روی گیتی که یک بخش بسیار کوچکی از همه کهکشان و سپهر هست میازماییم و با اون زندگی میکنیم تنها جزی از همه است ولی با همان قوانین سروکار دارم آنچه که در هستی هستیداران روی زمین روی میده یعنی آنچه که خودشون به وجود میارن رو میشه در گستره خودش نگاه کرد. و از آنجا که آنچه که نژاد انسان انجام میده و روی همی آنچیزی که روی مادر زمین وجود داره هنایش یا تأثیر میگذاره بنابراین بهتره به این انسان و پیوندش با عشا و راستی نگاهی بندازید البته در این گستره هم داده سخن دادن و انسان رو و اندیشه و گفتار و کردارش و روانش رو زیر بین گذاشتن و اون رو بررسی کردن خود دانش گستردی است و از روان شناسی تا زیست شناسی و جامعه شناسی رو در بر میره ما اگر بخوایم در اینجا تنها از دیدگاه و منظر دین بهی به مقوله راستی و دروغ نگاه کنیم که چانگاه خود رو داره و هم تلاش داریم تا با آنها روشنایی بندازیم البته پرداختن به بازنمودها و تلاش در بازگشایی اون راست و کدهایی که در کتاب ها و دفاتر دینی و دانشی و تجربه ای از زمان کهن تا به امروز هستند خود مقوله جداست و ما هم تلاش داریم که آفکار گا چلیم میکنم و دیگر همه ها را بذاریم کنار و از خودمون آغاز کنیم و بخواییم ساده بازنمودی داشته باشیم میتونیم بگیم که راستی یعنی نشان نشاندادن آنچه که هست و نپوشاندن آن یا به گفته دیگر فریب ندادن و تظاهر نکردن و دروغ نگفتن یا به گفته دیگر چنگ وارونه نزدن به گفته شاهنامه ایرانی آنچه که در اندیشه و احساس هست همان را به زبان آوردن یعنی راست خب اکون میتونه اینجا این پرسش هم پیش بیاد که آیا یک جنایتکار و یا یک باورمند به اینکه هر کسی مانند او نیست و در گروه او نیست امدانم کافر است و گناهکار است و هر کاری هم حاضرند بکنند تا حتی اون رو از بنده ببرند و باور هم دارند که این کار خوبه و آن چیزی است که اون خدایش یا فرماندهش میخواهد این این حکمت است و باید بهش سرس پر خب این کس هم آنچه را که در دل و سر داره به زبون و کردار میکشونه آیا خب پس این هم خوبه که باید پاسخ داد آری احریمن نیز هرگاه روی خود رو نشان بده و آنچه در سر داره در گفتار و کردار بیاره خوب است بدین مفهوم که دیگر نمیتواند فریب بدهند نمونهشم زیاد داریم و میبینیم یک نمونه بزرگشم خود ما ایرانیان در این سالهای گذشته دیدیم و میبینیم کس و کسانی رو که هزاران دروغ گفتند و میگویند تا به تخت و اریکهٔ قدرت بنشینند و زمانی که نشستند تازه راستی هاشون هبیدا میشه یعنی باز هم میبینیم که در نهایت راستی پیامدش نیکه به هررو خود رو نشون میده خب از سوی دیگه ما میگوییم هومته هوخته هوشته یا هو این هو یا وهو که میاد خب مانای نیک رو بر خودش داره که میشه گفت هم راستی رو در خودش داره و هم سو و برآیندش نیکی است و آن هم نیکی همگان پس راستی بهترین نیکی است اشم هو و هیشتم هستی سخن به اینجا رسید از چنگ وارونه نزدن گفتم و از شاهنامه خب پروانه بدید تا به اینجا که رسیدیم یک سری هم به بندهش بزنیم به اسطوره هامون بزنیم در مورد اسطوره ها خیلی چیزا میشه گفت میشه گفتش که یک یک معنا و مفهوم اسطوره همون فلسفه است خب امروز ما بهش میگیم فلسفه ولی پیشینیان ما در در اسطوره ها این سرنددیشه ها رو داشتند این فصفحه های زندگی رو داشتند. و وقتی که ما به اینها میپردازیم خب بهترین بر حال سرچشمه ما برای دیدن و رسیدن به این اتریا خب شاهنامه گرامی است و البته اینها در خدای نامکا و در بخش دیگر ابای گرامی، و همچنین مطور پردوی آمدند از یشت ها گرفته تا باندهش و دیگر دفاتر که وجود دارد برای نمونه با وقتی که به داستان نخستین انسان که بر, بر اساس بر حال شاهنامه و برخی نوشتارها کیومرس هست و برخی هم جمشید رو نخستین انسان به شمار رو که بعد جمشید عنوان نخستین پادشاه شد نگاهی بندازیم و کمی اون رو دنبال کنیم به خیلی چیزهای جالبی بر که من این پایان این سخن رو دوست دارم که به این بپردازم و به آن چیزی که امروز گفتار ما بود یعنی به فریب و دروغ هم در اون اشاره دارد نخست از اون رازها و کدهایی که بتون تون گفتن میخوام یک چیز رو اینجا بازگو کنم شاید زیاد بهش نمی اندیشیم. زیاد در مدش گفته نشده برای نمونه کیومرس یا جمشید هر دو خب نخستین چیزی که به نظر آدم میرسه وقتی که نام اینها رو میشنوه و آن که در موردشون میخونه به نظر میاد که این هر دو مرد بودند در حالی که خب اگر چنین بود باشه میشه از انسان از خودش بپرسه که خب اگر نخستین انسان تنها مرد بود بعد فرزند از کجا آمد اما اگر ما کمی بیشتر به این اینها بریم و نگاه بکنیم میبینیم که اینها نه تنها یک جنسی نبودند دو جنسی بوده، یعنی مرد و زن با هم در واژه کیو که همون گع و باشد ما هم گئو رو داریم و هم مرته خب از این دو هم به اصطلاح تفسیرهای گوناگون شده است گئو که همان واژه زندگانی یا جان باشد خوب معناش روش مرت دو گونه میشه ماناش کرد یکی مرد و یکی مرگ که از یک سو گئو مرته رو گفتند پس جان مردنی یعنی نخستین جانی که میراست به عنوان نخستین انسان اما جور دیگری هم میشه رو نگاه کرد گئو یا زندگی ما رو در واژه زن هم داریم و مرته در واژه مرد خارت من اینو جا جاها دیگرم گفتم خیلی از دوستان وقتی که واژه زن و مرد رو میگن زن رو از زندگانی میدونند و مرد رو از مرگ ولی به نظر من چنین درست نیست نگاه کردن ما واژه مردم رو داریم و مردم یعنی زن و مرد با هم و مرد میشه گفتش که کوتاه شدیه مردم هست یعنی زن و مرد با هم و از این دوست که زایش و افزایش و زندگی روی میده به هر روی گعومرتر رو میشه گفت زنمرد همون که جمشید یک تنیز جمشید ییم و ییمه بوده یعنی که هستمون مش و مشیانه از اونجا میاد در واقع یعنی باز هم زن و مرد خب از اینش که بگذریم ما میبینیم که بگذارید پیش از اینکه که خب بخوام این رو به گناه گفتاری بگم خیلی میتونه زیبا و کمی هم حال یه شکل دیگهی به گفتار بده که اول از روی شاهنامه من رو بخشش رو براتون بخونم و بعد به زندش یا تفسیرش بپردازم. نخست از اینجا آغاز بکنم که در شاهنامه انگامی که از آغاز آفرینش سخن بمیاد میاد خب نخست از آفرینش یا پیدایش آخشیچ سخن میاد و سپس از گیاه که می روید و سرانجام جنبنده یا جانور که پدید میآید. گفتار دوم به گفتار اندر در آفرینش مردم می رسد و میگوید که از این بگذاری، مردم آمد پدید شدین بندها را سراسر کلید و ادامه میدهد یعنی نخستین انسان یا انسانهای به وجود آورده رو میبینیم که شاهنامه هم مردم مینامد نه نخستین مرد یا نخستین زن بلکه مردم البته پستر زمانی که به خود کیومرس یا دیومرد یا امرتا میرسد خب به گونه ای شیوه گویش کمی دگرگون میشه و کیومرس رو نخواستیم پادشاه هم حتی به شمار میاره که چراییش رو باید در جاهای دیگر جستجو کرد اما من از روی شاهنامه این رو ادامه میدم زمانی که میرسد که از گیومرت نام میآورد برین گونه پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت که این تخت و کلاه گیومرت آورد و او بود شاه که خود چون شد او بر جهان کت خدای نخستین به کوهان درون ساخت جای سر تخت و بختش برا آمد ز کوه پلنگینه پوشید خود با گروه خب در اینجا پس از اینکه کمی از دیومارت و چگونگی او و زمانش گفتگو دارد میرسد به جایی که از فرزندش یا سیامک نامی میآید که بدین جا بدین گونه ادامه می دهد پسر بود مرو را یکی خوب روی خردمند و همچون پدر نامجوی سیامک بودش نام و فرخونده بود گیومت را دل به دو زنده بود ز گیتی به دیدار او شاد بود که پس بارور شاخ بنیاد بود به جانش بر از مهر گریان بودی ز بیم جداییش بریان بودی بر آمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمن اهریمنا. برشک برشکندر احرمن بدسگال همی رای زد تا بیاگند یال، یکی بچه بودش چو گرگ سطرگ دلاور شده با سپاهی بزرگ جهان شد بر آن دیو بچه سپاه ز بخت سیامک چه از بخت شاه سپه کرد و نزدیک او راه جوست همی تخت و دیهی کی شاه جوست همی گفت با هر کسی رازخیش جهان کرد یک سر پراوازخیش گیومرد از این خود چه آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود خب تا اینجا دیدیم که سیامک فرزند یا پسر کیومرس هست و در کیومرس در گیتی دشمنی نداشت مگر اهریمن ریمن در نهان دشمنش بود یعنی خود رو نشون نمیداد روی نشون نمیداد که البته احریمن فرزندش رو با سپاهی به قول معروف به برای از بین بردن و کشتن کیومرس میفرسته که کیومرس که نماد نخستین انسانه یعنی نماد انسان است و اینجا احریمن در در پنهان و در نهان برای از بین بردن انسان میاد و کیومرس ازش خبر نداره کیومرس از این خود کی آگاه بود نمیدانست در نهان هست خب و سپس اینگونه ادامه بیدا میکنه یکا یک بیامد خجسته سروش به سان پری ای پلنگین پوش به گفتش به راز این سخن در بدر که دشمن چه سازد همی با پدر سخن یا سخن چون به گوش سیامک رسید ذکردار بدخواه دیو پرید دل شاه بچه بر آمد به جوش سپاه انجمن کرد و بخشاد گوش در اینجا میبینیم که این سیامک است این جوان نخستین جوان شاهنامه بم به نماد جوانان که سروش براش پیام میاره از درون تاریکی ها ناگای ها نادانی ها به بش, بش میگه که دشمن اهریمن قصد جان شما و قصد جان پدر رو کرده در اینجاست که این جوان بدون اینکه مصلحت بی از نیروی جوانی به جوش میاد و سپاهی انجمن میکنه و سپس بپوشید تن را به چرم پلنگ جوشن نبود خود نه آیین جنگ تذیره شدش دیو را جانجوی سپه را چه روی اندر آمد بروی سیامت بی آمد برحن تنا براویخت با دیو اهریمنا. سیامک پیامت برهن تنا این برهن تن به مانای این نیست که تنش برهنه بود به مانای این هست که بدون اینکه چیزی به خودش نقابی بزنه چیزی به خودش آبزون کنه برهن تن با دل با دلی شیر و دل باز آمد به جنگ اهریمن. بزد چنگ وارونه دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه فکرد آن تن شاهزاده به خاک به چنگار کردش کمرگاه چاک اینجا میگه بزد چنگ وارونه دیوسیاه چنگ وارونه زدن گفتم یعنی فریب دادن با فریب آمد و شاه رو از بین دو دوتا دو اندر آورد بانای شاه و شاهزاده رو به خاک انداخت و کمرش رو چاک کرد از اینجا می بینیم که فریب با اینکه سروش این آگاهی رو آورد اینجا ما به این صورت می تونیم بگیم که سروش اون آگاهی که آمد یک آگاهی آزرخشی بود یعنی گاه به گاه یک گاهی می آمد و این آگاهی رو میداد ولی اون آگاهی آنقدر زیاد نبود تا در واقع بتونه روش رو روشو به درستی نشون بده و شکستش بده به هر روی در اینجا سیامک کشته میشه سیامک فرزندی داره به نام هوشا سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای یا جاه دستور داشت گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود در زمان این هوشنگ یا حوشنگ شاه هست که گفته می شود که آتش پیدا شد آتش کشف که این پیدا شدن آتش رو شاهنامه اینجوری با ما در میذاره یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه پدید دامن از دور چیزی دراز سیاه رنگ و تیر تن و تیز تاز تو چشم از بر سر چطور چشم خون ز دود دهانش جهان تیرگون نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ به زور کیانی رهانی دست جهان سوزمار از جهانجوی جست برآمد به سنگ گران سنگ خورد همانو همین سنگ بشگست گرد فروغی آمد از هر دو سنگ در سنگ گشت از فروغ آزرنگ نشد مار کشته ولی کم زراز از این تپ تپ سنگ آتش آمد فراز و سپس ادامه دارد خب این یکی از حیام های این داستان این است که میدانیم مار خب البته در مورد مار و واژه مار و مر خیلی میشه گفتگو کرد که در مردم هم داریم و یکی از مفهوم های جرفترش در واقع همون زنی و مردی است و همون دو دانه نخستی نیست که از اون زندگی فراز میاد ولی مار در فرهنگ ما خیلی جاها با ویژگی میشه گفتش که بدی یا اهریمنی هم پیوند داره در اینجا مار اگر ما از دیدگاه اهریمنی نگاش کنیم می‌بینیم که خود رو نشون میده و چون خود رو نشون میده خب اینجا از اون سنگی که به سوش پرتاب میشه که بشم نمیخوره مار هم کشته نمیشه اما از اون آتشی فروزنده میشه که اون آتش از اون پس بر جای میمانه یعنی اون آگاهی که نخست در زمان سیامک آزرخشی می آمد و گاه به گاه می آمد و تاریک می اون به روشنهایی نگی به آزار جان انجامید همه زمانی که آگاهی ماند و ماندگار شد آتش بهرام آتش ورهرام ازش پرید آمد آتش ماندگار، آتش پیروز یعنی آگاهی پیروز بنابراین من همین بخش رو گفتم که <تصفح> این رو براتون باز کنم که حتی از از دل بنده ما اصطوره های ما هم از همون گذشته این تجربه و آزمون از قدیم بوده که هر جا که بدی روی, خود چهر، روی چهره خودش رو پنهان بکنه ازش چیز خوشی در نمیاد ولی وقتی آگاهی باشد حتی نتیجه آن هم می تواند نتیجه نیک و راست داد که دروغ از زندگی همه رخ بربندد و نیازی بهش نباشد ترسی نباشد تا از برای آن دروغ گفت و بنابراین بتونه زندگی ها و جامعه ها رو زندگی های انسانی رو به سوی راست و درستی بیاره که درون همه روی خوشی و آسایش و آرامش رو به خودشون ببینید برای شما هم آرزوی عشایی جاستی و درستی رو دارم و همه باید در این راه بکوشیم و خیشگاهی خیش رو بپذیریم شاد و پیروز و سربلند باشید تا گفتمانی دیگر و درود دیگر بدرود گاهی که مادر از برای آگاهی من لب سخن می گوشد عشق را در کلامش نور را در دلش و پالکی را در نگاهش میفهمیدم و آن زمان که از ایران میگفت، گفت گونه هایش تر میشد و نگاهش خیره و آنگاه که مرا درس خردورزی می داد در گوشم گات ها را مجموع کرد حال که او به آسمان پرکشیده است و در افق ناپیدا من آن سرودها را به یادش می تا پرواز را خود بیاموزم از روزگاه یور وانم من جیله و هو ایسای تباچا اوت سای ایشه در پرتوه اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیش سافر ات تا وخش یا شمتو یا مزداتا یا چید تا چا و چا هومانس را اشاهی چا یا روچه بیش درسطا بروازن اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سپنتا مینو و انگ مینو سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی عشا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهرهمند گردید. شراعه او شایست و نشتا نروی نکار سرشار من اینها، اوناویچی پس نه چشدی آوی تو ای مردم بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن آنها را بررسی نموید هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصان برگزیند پیش از فرارسیدن روز با همه به پا و در گسترش آین راستی بکوشید. cha toy ven برنا و شاچار ید حترا منا بود ید را چیز تیش این حت پروردگارا بشدد که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادانی پیش میبرند، از بندگان وفادار باشید ای خداوند جامعهت و ای حسی بخش بزرگ، بشود که در پرتوب راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم. پا زمانی که ما دست خوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یک پاکچه به تو توجه پیدا که در اندیشه خود تو را سراغاز و سرانجام هستی شناختم انگاه با دیده دل دریافتم که توی سرچشمه من که توی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری میکن Yet, ne Dao Kaur Wien Geet Auz Çal, Teşşo Dey Nauz Çal Thu Alman Eng Khafra Tuş Çal Yet, Azt Vendim Da Dao Uştenim یادت چاو تا نا چاو سین خامس چاو یترا ور نه بساو داو ای خداوند خرد هنگامی که در روز نخست تن و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و برای انسان نیروی کار کردن سخن گفتن و رهبری کردن به ارمغان آوردی خواستی تا هر کسی به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. ای ای هی تا نرو افاضه نیو jo ha cha rao the mo ye ne pa we be true jo au say ho ish ki pa kare tu pia tu swara phe nau مرنگ دویه ای مردان و زنان کوشش کنید به این حقایق توجه داشته باشید از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوس انگیزه است پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید پیوند خیش را با دروغ بگ و بدانید که آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران به آید جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد. و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند